آقا معتی عزیز سلام امیدوارم که حالت خوب باشه شاید از حضور تو در شرکت نوین الماس و انبار چسب علیخانی عمرسیدی کمی بگذره اما همین که تو در این سن شروع به کار کردی زحمت می‌کشی برخلاف هم سن و سالات داری کار کنی و شاید کمک خرجی جیبرت خونه هستی به شدت برای من قابل احترام بدقول میدم که هر کاری از دستم بر بیاد برای پیشرفت تو برای زندگی کردن تو و برای سراسامان دادن تو انجام بدم امیدوارم که تو هم با همت و پشتکار و اراده ای که داری به من ثابت بکنی که ارزش اعتماد کردن به نیروی کم سال رو داشتی و در آخر هم برای تو آرزوی موفقیت می‌کنم. کنم انشالله که روزهای خوبی برای خودت و خانوادت در پیش باشه